بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيام كتاب روزه وواجب على كل مكلف من المسلمين بالبلوغ والعقل أن يصوم شهر رمضان إذا علم بدخوله برؤية الهلال أو استكمال شعبان ثلاثين يوما إن غمة میفرماید واجب هست بر هر مکلف از مسلمانان با بلوغ و عقل چون انسان به سن بلوغ رسید و عقل داشت مسلمان بود دیگه مکلف میشه این یسوم شهر رمضان که روزه بدارد یا روزه بگیرد ماه رمضان را زمانی که دانست به دخول رمزان با رویت هلال یا کامل شدن شعبان سی روز اگر پوشیده شد دیدن ماه در روز 29 بعد پس در پاورقی میاره دو مسئله بسیار مهم مسئله اختلافی هستند بین فقه ها یکی مسئله اختلاف مطالع و یکی مسئله اینکه آیا حسابات فلکی اعتبار دارند یا یعنی باید دیدن چشم باشه. این دو تا مسئله رو میاره در راو با اختلاف مطلع میگه که جمهور فقه ها میگوین اختلاف مطلع اعتبار ندارد هر کجا ماه دیده شد برای بقیه رمضانه خب این قول قوی تر هم هست اولا قول جمهور فقهای و قوی تر هم هست چرا؟ چون اگر ما بیایم بگیم متلع متلع این مسلمانان اولا در حرج میفتن جدای از ادله شرعی به چه شکل؟ امروزه مسلمانان چه آگاهانه چه غیر آگاهانه طبق مرزهای های جغرافی دارن چیکار کار میکنند؟ با هم دیگه روزه میگیرند و با هم دیگه میخورند کشورشون اعلام میکنه تمام اونایی که در اون چارچوب اون مرز هستن چکار کار میکنند؟ عملی میکنند کشور همسای هم حکومتش اعلام میکنه اونا هم میخورند اعلام نکنه نمیخورند در حالی که خیلی از اونهایی که مرز نشینند با پای تخت نشینی ها گاهه موقع دو هزار کلمت مثلا فاصله داره هزار کلمت با هم چه داره؟ ولی اینی که این گوشه مرزه با اونی که پای تخت نشسته همخانی داره با هم همزمان میخورند و همزمان روزه میگیرند در حالی که اون کسی که این طرف مرز زندگی میکنه با اون طرف مرز فقط صد متر با همدیگه چی دارند؟ فاصله دارند یا دویست متر یا یک کیلومتر؟ یا دو کیلومتر؟ اینا با همدیگه فرق داره لذا امروزه اومده شده روزه بر اساس مرزهای جغرافیایی نه متلعهای حقیقی برای ماه باور کنید اینو, اینو باور کنید. اگر ما بیاییم اینو مطلعی کنیم مشکلی نیست دنیای امروز این تکنولوژی داره مطلعه ها رو با هم دیگه مشخص کنه ولی مطلعه ها کاری به دوری و نزدیکی ندارند اصلا مطلعه ها ممکنه دو تا انسان با هم دیگه دو تا شهر با هم دیگه نزدیک باشند هم مطلع نباشند شهری دورتر با اینا این اللحاظی علمی دارم عثمانی، از علمای پاکستان در کتاب خودش بحث های عصری رو میکنه به حوثون فی قضای معاصره میکنه اونجا این مسئله رو توضیم ده بحث مطله رو میبینی که دون شهر با هم دیگه دورن هم مثلند، اما عنوازی علمی عکس اکسای محوره رو اونجا میاره توضیم ده لذا مطله امروزی اینایی که ادعای مطله میکنند اصلا به همون نظر خودشون عامل نیستن در حقیقت امر نمیتونند, نمیتونند هم باشند به عنوان مثال میگم مثلا افغانستان به عنوان مثال میگم میاد اعلام میکنه آقا فردا رمزانه ایران اعلام نمیکنه خب اون مسلمانی که این طرف مرز زابل به عنوان مثال میگیم این مثلا طبق کشورش میگیره اون یکی که پنج کلمت اون طرف اون نمیگیره خب اینا مگه مطلشون با هم فرق داره یا نه دارن مرزی عمل میکنند بس طبق شد مرزای جغرافی جغرافیایی این بحث مطلح است ولی جمهور علمای اهل سنت بر همینند که مطلع اعتبار نداره امام ابو حنیفه نومان میگه اگر ماه و اهل مشرق دیدند اهل مغرب روزه بدارند ولی احناف معاصر احناف معاصر این مکله رو بهش چسبیدند. در هر صورت جمهور فقها ها میگن مطلع اعتبار ندارد. در رابطه با وحدت مسلمین در این که روزشون یک روز باشه کدوم یکی هم خمخانی بیشتری داره؟ اینی که مطلع اعتبار نداره. خب نمیشه بابا یک جایی مثلا اول رمضان باشه یک جای دوم رمضان اصلا اینو کی قبول میکنه آه؟ میشه مگه میشه یک جای اول رمضان باشه اونجا دوم رمضان اون روایتی که هم بس استدلال میکنه اگر امیغ انسان بهش بپردازه به, نز... به نظریه جمهور میرسه به نظریه جمهور فقهای های اهل سنت میرسه یعنی حنبلی ها میگند اینو مالکی ها میگند امام ابو حنیفه نمان میگه خب بعضی از سادات شافعیه این مطلب رو میگن اعتبار داره در هر صورت این یک مسئله مسئله بعدی حسابات فلکیه که آیا حسابات منجمین اعتبار داره برای اینکه واقعاً واقعا وارد شده یا اعتبار نداره ببین اولا من این مسئله رو مطرح میکنم بعضی از بزرگواران هستند اولا این نظریه رو نظریه مخالف با نس میدونند یعنی میگن مخالف با نس اینجا اجتهاد نیست لذا نظریه خطرناکش میدونند آیا واقعا این چونین هست یا نه موقعی که میبینیم این نظریه با حکم در تضاد نیست بحث روی ابزاره دیدن ما ابزاریست برای دخول چی؟ دخول رمضان. در زمان رسول گرامی اسلام صلی علیه وسلم تنها راه یقینی که می دونسیم الان رمضان وارد دیدن ماه بود حسابات فلکی اون روز علمی زنی بودند سی یقینی نبودند ولی حسابات فلکی امروز از زمین تا اصال متفاوت است برای پنجه سال مشخص می‌کنه طلوع خورشید چی موقع؟ فجر صادق چی موقع هست؟ خورشید چی موقع زوال میده؟ چه موقع غروب میکنه؟ حتی برای 50 سال آینده داره میگه که چی موقع خسوف و خسوف انجام میگیره. خب اگه در زمان قدیم برای دخول وقت نماز تنها دخول رمضان نبود، چه چی چیزی مهم بود؟ بحث خورشید بود. آقا خورشید غروب میکرد مغرب داخل میشد. زوال میداد ظهر داخل میشد. فجر صادق میداد نماز صبح می اومد. ولی حسابات فلکی اومدن الان تعیین کردن یعنی اگر الان حوا ابری هم باشه اصلا شما در یک خونه تاریک هم باشی طبق ساعت میاد چکار میکنی نماز ظهر تو میخونی نماز عصر تو میخونی نماز مغره تو میخونی نماز اشار میخونی دخول فجر صادق و طبق حسابات فلکی در حالی که اون موقع گفت خورشید که زوال داد وقت چی داخل میشه؟ آیه ما الان منتظر بیمونیم بریم هر روز نگاه بکنیم خرشی زوال داده یا نه یا یعنی نه به حسابات فلکی داریم اعتباد میکنیم طول واقعا دقیق هند طول واقعا چی هند حسابات فلکی در این مورد این که بگه ماه تولد شده واقعا دقیقه واقعا یعنی دقیقه و مؤسسات خیلی معتبری هست موقع میان بگن خرش اصلا میگن از قبل ماه این قد دقیقه مکس داره یعنی بعد از غروب خورشید ماه 20 دقیقه مکس داره در فلان نقطه زمین این قد رشد کرده مثلا میگه در الجزائر در لیبی 20 دقیقه مکس داره خب آیا الان هم این ابزار یقینی نیست مثل دیدن برای ما که ما بگیم دخول رمضان ثابت شده یا نه باور کنید هست ولی چون بحث چون؟ بحث تقلیده بحث بحث چیه؟ تقلیده میگه فقه های قدیم این نظر رو دادند که حسابات فلکی اعتبار نداره آقا نداره میگه خب حدیث رو هم بیارند میگن سومو لرؤیته و افتیرو لرؤیته با دیدن ماه روزه رو بگیرید و با دیدن ماه بخورید خب با دیدن ابزاری یقینی بود برای این که رمضان الان داخل شده یا داخل نشده الان بحث های حسابات فلکی یقینی هست تازه در فقه میاد اگر یک نفر هم اونو دید یعنی یک نفری که احتمال خطا در شخص هست ولی در حسابات فلکی الان این احتمالش خیلی از اون یک نفر پایین تره خیلی از اون یک نفر هم چی شده این دیگه لذا اگر ما اگر اومدیم نظریه اونا رو نپذیرفتیم این حق رو داریم ولی این که این نظریه رو نمیدونم گمراه کننده بدونیم یا مخالف با نمیشه گفت مخالف با نس چون بحث دیدن بحث اینه که ابزار که الان رمضان داخل شده یا داخل نشده و اول حدیث اتفاقا در تایید همین چیز است. که رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: نحن امتون امیه ما امتی امی هستیم خب این, این هم بحث خیلی مهمیه ببینید امی بودن ما در چه چی چیزی هست آیا در بحث دینه این که خیلی خطرناک میشه چون قرآن کتاب هدایته در هدایت چیزو رو کم نه گذاشته امی بودن در کدوم قسمته انتوم اعلم و به اموری دنیا کم در بحث دنیاه واقعا اون روز امت اسلام در قسمت حسابات فلکی امی بود و غیر مسلمین هم به اون درجه نرسیده بودند که بیان از پنجا سال همه چیز ریز تعیین بکنند حتی بگن 5 و بیس و پنج دقیقه آقا خرشید زوالشه پنج نمیدونن فلان ساعت فجر داره طلوع میکنه ولی پنجا سال آینده رو لذا رو این با تعمل کرد رو این با، یعنی ما نباید همیشه مقلد باشیم نظریه جدیدی که مطرح میشه حد روش کار کنیم حد نقل روش کار کنیم؟ کار کنیم خب در علمای ایران یعنی کشور خودمون ها اتفاتوه جنوبی ها این چی رو حسابات فلکی رو اعتبار میدن و طبق حسابات فلکی هم رمضان رو اگر یادتون باشه امسال چکار کردند اعلامش کردند یعنی تقریبا در نیمه های شعبان بود که فتوای در فضای مجازی چه شد منتشر شد خیلی از دوستان با دیدی خیلی مثلا غضبناک این فتا رو نگاه میکردن میتونستن این قول مرجوه بودنند میگن آقا با تواجه به ادله ولی نمیشه آخه ببینید در بحث امور دنیا این بحث دیدن جز ابزارهای هایه جز ابزاره بعدش بحث دیدن خود کلمه رویت در عربی معانی متعددی داره خود مثلا میگه رأی تو زیدن آله من زیدر عالم دیدم این دیدن چشم نیست دیدن چیه؟ دیدن قلبه بشونگن افعال قلوب یکی از اونا رعاه هست ها؟ بحث های روئین شده ان شاء الله مراجعه بشه در اگه می از نظریات شیعه هم آگاه بشید در ویکی شیعه خوندم می نظریاتشون گفته بود ذهب بعض الفقهاء الى اعتبار الحسابات الفلكيه منهم سيد الخامنه‌ای في حين ان بعضهم لا يرى ابره بها الا ان يحصل الاطمئنان منهم الا ان يحصل الاطمئنان منهم السيد سیستانی اینو در ویکی شیعه یعنی اونها همین اختلاف بین خودشون دارن در هر صورت ما دنبال دلیل هستیم یعنی این پویایی اگر در فقه زنده شد که ما دنبال اکثریت نباشیم، دنبال چه باشیم دنبال عدله باشیم میبینیم عدله حسابت البته این نظریه که من بهش مائل هستم و کار کردم و کار کردم خب بریم جلوتر پس این دو مسئله تا اینجا کار کافیه گفته بود زمانی که دانش که الان رمزان داخل شده با دیدنش اونایی که میگن حسابات فلکی اعتبار داره میگند الان بحث حسابات فلکی دقیق شده چه شده؟ دقیق شده مثل چشم و این حکمت هم داره آه. یعنی هر چه ما به سمت جلوتر میریم آلودگی های محیط این یه چیز علمی آه. بیشتر میشه الان کی میتونه از اکثر ساله از روسا خودمون ببینه هوا صافه همشه غباره سمت غرب دیده میشه با این کارخانه ها و با این فضایی که الان لسه علم هم در همزمان با این مسائل رشد شو کرده و یعنوی لکل یوم من اللیل سیام غدن من فرد رمضان میگه نیت میکنه برای هر روز از شب روزه فردایش رو از فرز روزان یعنی برای این که فردا روز بیگیری از هر, هر شب چیکار میکنه، نیت میکنه. خب بعضی از فقه بزرگوار گفتن نیت همون اول شهر اول ماه که بکنه چیه؟ کافیه نیت میکنه که من کل ماه دیگه چیم بعدش نیت هم صد درصد اگر اون کل ماه اصلا قبول نداشته باشیم بگیم هر شب که هم انسان نیت بکنه همین که سا... مثلا سر شب میگه آقا من بلند میشم سهری میکنم تو دلش این خودش چیه؟ نیت, نیت همینه همین که داره سهری رو درست میکنه به فکر سهری هست نیت نیت روز بودن همینه پس میگه نیت میکنه برای هر روز از شب نیت فردایش رو در فرض رمزار یعنی نفلی ها متفاوتن میگه در مسئله بام میگه برای روزه رمضانش از شب نیت نیاز هست و کذا کل صوم واجبه و همچنین هر روزه واجب دیگری لا یجزو الا بالنیت قبل الفجر درست نیست مگر این که نیت بکند کی قبل از فجر قبل از یعنی قبل از فجر صادق باید نیتش باشه که من فردا باه برای این دلیل دار. و اذا شهیده برویته و یجوزه فی صومت تطوئی ينوي نحارا بعد الفجر وقبل الزوال. الزوار و جائز هست در روزه نفلی که نیت بکنه در روز بعد فجر وقبل الزوال. الزوار برای این روایت هست رسول گرامی صلی الله علیه و میومد موقع سبحانه بود میپرسی چیزی هست برای خوردن اگر میگفتن هست به این موقع میخورد اگر می گفتن نیست پس می گفت من دیگه چه هستم روزه هستم و اذا شهد برؤيه هلال شهر رمضان في سحب او غيم شاهد عدل الذي محكمه في الصوم والفطر و زماني كه گواهيد عدن بيديدن هلال ماه رمضان چه زمان كه هوا صاف بو زمانك أبري بود چه زمان كه بود شاهد عدل دو عدل دو شاهد عادل زواني كه لازم حكمه في الصوم والفطر لازم هست در شروع رمضان یعنی در روزه گرفتن و در خوردن یعنی در فطر اید و یقبلو شاهدون واحدون فی هلال صومی دون الفطر میگه قبول کرده میشه یک شاهد در هلال صوم ابتدای رمضان دون الفطر اما ندر اید برای اید دیگه میگه شاهده یک نفر شهادتش کافی نیست البتين هذه النظرية هي خلية ومن رأى الهلال وحده التزم حكمه في الصوم والفطر هرکس بتنهاي ما هو ديد بر شخص لازمي مشي حكمش چه دار روزه چه دار خردانه بعضي اس فقهات ميگن خوب واذا راى الناس ال... واذا راى الناس الهلال في بلد وغم عليهم في غيره فعلى اهل اقليم ذلك البلد كله التزام حكمه ولا يلزم غيرهم من الاقاليم بله شو وافقتوا قفتي اختلاف دارن بالجمهور اينه اينه اومد ميگن زماني كه مردو هلال در شهر و بربقيه در بود ولي میگه بر همهشون لازمی حکمش تبقیه اونا باید عمل بکنند با ولا لا یلزم غیرهم من الاقالیم اما اقالیم دیگه برشون لازمی نیست این که متل اعتبار داره اینه شوافه نظرشون متفاوت با است. الان دیگه احناف هم همین نظریه رو دارند این دارند عملا به عمل بیکنند و یک صیام و سیام شک ایلّا أن يصليه بما قبله أو يوافق صوم يوم كان يصومه من أيامه و مكروه حاست روزي يوم مشاك روزي مگرین که وصلش کنه ب ما قبلش یعنی قبلا هم چی کار کرده باشه میگه روزه گرفته باشه او یوافق صوم کان کانیهسموه من ایامی یا یا مشک موافق باشه با روزهایی که قبلا اون روزها رو چکار میکرد روزه می مثلا یا مشک دوشنبه قبلا هم این آقا دوشنبه رو چکار کرده روزه میگرفته میگه اینجا برایش دیگه مشکلی ندارد و انوافی للت شککه سیاه م غدن کان من رمبان فکانلا میو جزی، ایزا لم یکن ایزا لم یسمهو على علم به. یک زمانی که نیت کرد در لیلت شک سیام فردارو که اگر از سی باشه از رمضان باشه میگه براش لم یجزی براش درست نیست زمانی که روزه نگرفته بود اون روز رو از روی علم از روی شک براش درست نیست پس یقینی اگر اون روزه گرفت که من فردا رمضان به نیت رمضان درست، اما شکی براش اجزا نمیکنه براش درست و زمان و صیامی من طلوع الفجر ثانی الى غروب الشمس. زمان روزه از چی وقت تا چی وقته از زمانی که فجر دوم یعنی فجر صادق طلوع میکنه چون فجر اول که اعتبار نداره زمانی که زمان روزه شروع میشه از طلوع فجر دوم تا غروب خورشید یعنی از اون موقعی که ازان میگند آن باید زمانی گفته بشه که فجر دوم ببینید وقتها تابع ازان نیستند ها. ازان تابع چیه؟ ممکنی یکی دیر ازان بگه زود ازان بگه این اعتبار ازان فقط است برای این که وقت داخل شد ولی وقت مرتبط با علائم دیگه این هست مرتبط با چیه وقت صبح مثلا مرتبط با دخول فجر دوفومه شروع رمضان با تولد هلاله با تولد چیه هلاله خب هلال اون موقع نیازی بود با طرف ببینه الان علم داره میگه آقا این لحظه حرکتشو کرده از این سمت اون سمت بعد از غروب خورشید به این دقیقه داره غروب میکنه خب حال دیگه تولدش پیش اومده دیگه تولدش چیه؟ خب بریم جلوتر میگز و زمان روزه از طلوع فجر دوم تا غروب خورشیده. لیکن علیه تقدیم الامساکی یسیرا قبل طلوع الفجر میگه لیکن شخص نگه بداره یک کمی قبل از طلوع فجر آه؟ که همون دستی میگند احتیاط ولی نو دیگه های بزرگوار این نظریه رو دادند اما کسی بی این عمل نکند سنت است چون رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم چیزی در روایات ثابت نیست فقها احتیاطا این فتوای این اجتهاد رو دادند و تاخیر الفطری یسیرن بعد غروب شمس و میگه تاخیر کردن خوردن همی یک کمی بعد از غروب خرشید و دید؟ میگه وقتش از طلوع فجر دوم تا غروب خورشیده ولی احتیاطا از این طرف و اون طرف یک کمی چه کار بکنه؟ احتیاط میکنه خود رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در یک حدیث اومده اصلا اصلا راوی رو گفت میگه راوی میگه که ما همراهش بودیم گفت فجده آ شربتی درست کن که از جو اینا بود راوی میگه بهش گفتیم هنوز روشنه خورشید علاقه شست گفت درست کن و روایت سریح داریم که تعجیل در فطر چه هست مستحب هست در هر صورت فوقهای بزرگوار این نظریه رو دادن لیسیر مستوفیان لی, لی امساک ما بینهما میگه تا مصطوفی باشد تا کامل باشد تا چه باشد برای امساک ما بینه این دوتا یعنی طول فجر ثانی و غروب خرشید و انکان مباقای اللیل او دخولهی مفترن و این امسک میگه اگر چکه با بقای لیل یا دخول لیل بقای لیل منظور از سمت سحری دخول لیل از سمت غروب میگه مفتر هست اگر چه چه هست؟ اون جوز روز حساب و این امسک اگر چه هم؟ پرهیز کرده باشه امساک داشته باشه نخورد خورد و شک فی طلوع الفجر فا لم یعید اگر شک کرد در طلوع فجر در طلوع فجر ثانی فاکل و خرد لم يعاد دیگه بعدا روزشو شو اعاده نمیکنه آقا شک داشت که آیه طلوع فجر دوم شده یا یعنی نشده شده خرد و طلوع هم کرده بود میگه اینجا اعاده نمیکنه ولو شک چرا چون اصل برین که شبه اصل بر چیه؟ شب بودنه ولو شک فی غروب شمسی فاکل اما اگر در غروب خورشید شک کرد و خرد اعاده میگه اعاده میکنه چرا؟ چون اینجا اصل بر روز بودنه ولو اشتبهت شهور على اسیرن. اگر بر یک ماه ماها قاطی شده آه نه الان چه ماهیه تحر شهر رمضان و میگه تحریمی میکنه جو سجوم میکنه تحقیق میکنه شهر رمضان به ای که رسید چکار میکنه؟ روزشو و لچکار می‌خره روزه شو میگیره فان وافقه او ما بعده او. اگر در این تحریق موافق با رمضان در اومد ها طبق تحریق کرده بود رمضان رو روزه گرفت نتیجهش به این رسید که در خود رمضان افتاد در چی افتاد یا ما بعد رمضان مثلا شخص تحریک شو کرده بود شوال شوال اومد به به عنوان رمضان چیکار کرد؟ روزه گرفت. میگه اجزهه. اینجا خلاص روزش گرفته شده. ولی و این وافق ما قبله لم یجزه و اعاده. اما اگر موافق با ما قبل رمضان شد. مثلا طرف به عنوان رمضان اومد روزه گرفت رجبو یا شعبانو. میگه اینجا دیگه اجزا میکنه کفایت نمیکنه و باید دوباره چکار بکنه؟ روزه چون قبل از وقت بوده مثل اینه که یک انسانی بیاد ساعت نه نماز ظهر رو بخونه آه؟ نمیشه که اومد قبل از رمضان آخر شعبانو به عنوان رمضان چیکار کرد روزه گرفت این هم حکم بود برای کسی که اسیر بود و نمیدانست که الان رمضان هست یا نیست کسی نبود که بشه بگه الان رمضان هست یا نیست